خایر فاتحین اگر به ملت شما برگردیم بعد از آنکه خدا ما را از آن وارهانی عطا که ما به خداوند دروغ بر و برای ما شایسته نیست که به با آن بوز مگر آنکه خدای پروردگار ما باشد پروردگار ما از روی علم به همه چیز احاطه کرده است بر خدا توکل کردیم ای پروردگار ما میان ما و قوم ما به حق فیصله کن وتوبي الى فيصل قنين الدغني وقال الملئ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون وقال شعب الدغني لقومي او گفتن اگر شما شعيب را پیروی میکنید بی گمان زیانکار میشد فاقذتهم رجفته فاصبحوا في دارهم جاثين پس زلزله ایشان را گرفت و ایشان در سکی دادن در داخل خانه های خیش از پایت تر آمدن الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلْ الْخَاسِرِينَ وردمی که شعیب را تکزیب می توری نابود شدند که گویی هرگز در آن خانه ها شکونت نکردند آنهایی که شعیب را تکزیب می کردند از زیانکاران مودند فتولا عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصح لكم فکیف آسا علا قوم کافرین پس شعیب از روی برگرداند و گفت ای من بگو من پیام های پروردگار خود را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم پس چگونه بر مردم کاسر تاسف خورم و ما ارسلنا في قريه من شهر نفرستادیم مگر آن که اهل آن شهر را به سختی و رنج گرفتار کردیم تا باشه که ایشان تزراغ کند ثم مبدلنا مكان السیئة الحسنت حتى عفو وقالو قدم السعبان الظراؤ والسراؤ فأخذنا بغت فأخذنا سپس ما و ایشان به جای نراحتی آرامش داریم تا آنکه نموع کردند یعنی بسیار شدند و گفتن پدران ما نیز برنج و راحت مواجه شدند سپس ایشان را ناگهان گرفتیم و خطری را که متوجه ایشان بود درک نمی کردن. ولو ان اهل القرآن امن و اتقول فتحنا عليهم درکات من السماء کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اگر مردم این شهر ایمان می آوردند و پرهیزگاری میکردند ما واکن بر آنها دروازه های برکات را از آسمان و زمین می میگشودیم ولی چون حق را تکذیب کردند پس ایشان را در برابر اعمالی که متکب شدند گرفتار کردیم آیا امن اهل شهرها از این ایمن شدن که در شب هنگام که ایشان خفته باشند عذاب ما به سر وقتشان برسد آقای و مردم این شهرها is in emin shudan ke dar chorsh gahon ke ishan bibakana ba bazi mashghulan azab ma basar waqteshon berase afa amin mukrallah آیا از گرفتار شدن خیش به تدبیر خدا ایمینند در حالی که از گرفتار شدن خیش به تدبیر خداوند جز مردم زیانکار که چنین می انگارند کسی ایمین بودن نمی تواند اولم یهدیلی لگی على ق بههم ف لا سمعون آیا ا کسانی که زمین را بعد از صاحبان سابق آن و میراس میگیرند این واضح نش است که اگر ما بخواهیم ایشان را برگوناانشان میگیریم و بردلهایشان مهر میزنیم پس ایشان هرگز نام شنولك القآانخصو عليك من الآندر. صولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا على قلوب الكافرين إن بود هول این شر حاکم و برخی از رویدادهای آن را به تو بازگو می‌کنیم اما آنها به آنچه قبلا آن را تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند به این ترتیب خداوند بر دل های کافران مهر می نیحت و ما وجدنا لأفترهم من عهد, وإن وجدنا در با با عهد و این وجدنا افترهم لفاسقیم در بیشتر این مردم پابندی به عهد نیافتیم و بیشتر ایشان را واکن فاسق یافتیم ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُ بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ صفت موشا را بعد از ایشان با نشانه های خود با فرعون اما ایشان آن نشانه ها را ظالمانه رد کردند پس بنگر که آخر کار فساد پیشگان چگونه بود و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین ومسافه ای فرعون بی گمان من پیامبری ام از جانب پروردگار جهانیان حقیق علی الله حق طرجع کن ببینت من ربکم فأرسل معی بنی اسرائیل سزاوار آنم که در باره خداوند جز حق چیز نگویم برای شما جانب پروردگار شما نشانه و زهر آوردن پس بنی اسرائیل را با من بفرست قال إِن كُنْتَ جِدَّ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فیران گفت اگر تو واقعاً با نشانه آمدهی پس آن را بیاور اگر تو از زمره راش بویانی فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هي مشاع عصای خود را انداخت و در دم جد های آشکارا گ ونظر دو او ف و دست خود را از آستین برآورد و در دم برای بینندگان سفید درخشننده بود قال الملووممی ساحر عليم كان شعب دقان فرعون گفتن این شخص اوه كان ساحر ماهر هست يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تؤمن من خواهد شما را از زمین شما بیرون کند پس شما چه مشوره میدیدید گفت او و اخاه و ارسل في المد يأتوك بكل ساحر علیم گفتند کار او و برادرشا به تعویق انداز و گردا و به شعرها و تا برای تو همه جادوگران ماهر را بیاورد و جاء السحرات فرعون قالو ان لنا رسدی فرعون آمدن رو گفتن آیا برای ما مزدی مناسبه هست اگر ما غالب شدید قال نعم وان انکم لمن فرعون گفت بلی و علاوه بر آن شما از مقربانید قالوا یا موسی ان ما ان تلقیا و ان نحن الملْقين قَالُوا أَيُّ ای مُوسَى أَأَتَى در اول مَاء بِهِ قَالَ الْفُو فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ از شون ایشان بساط جادوگری خود را انداختند چه اشمه های مردم را جادو کردند و ایشان را ترساندند و جادوی بزرگ آوردند و اوحینا الى موسی الالقعصاد فا اذاهیت القفر ما یعفیتون موسا وحیه کردیم که اکنون عصای خود را بیانداز و تردم همه افریقایی هایشان را در کام خود فرو میبرد و, بطل ما و این ترتیب حق آشکار شد و هر آنچه ایشان سربراه کرده بودن همه باطل گردید و غلبو هنالک و انقلبو پس فرانیان در آن هنگام مغلوب گردیدند و ذلیل و کوچک شدند و القی السحرات ساجدین و جادوگران به سجده افتادند قالو آمنا برب العالمین گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم رب موسی و فَوَرَدَ إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ قَالَتْ إِنَّ عَوْنٌ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا فران گفت آیا پیش از اینکه من با شما اجازه بدهم با او ایمان آوردید؟ یقینا این نیرنگی است که شما آن را در این شهر طرح کرده اید تا مردم آن را از آن بیرون رانید و زودی نتیجه کار خیش را در خواهیدی هست لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْبَلَكُمْ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 به این سبب که ما به نشانه های پروردگار خودشون به پر ما رسید ایمان آوردید ای پروردگار ما برماشه که بایی فروریز و ما را مسلمان بیمیران وقال الملع من قوم فرعون اتذر موسى و قومه اولی الارض و یذرک و آلیهتک قال سنقتل ابنا نسائهم و اینا فوقهم طاهرون کلان شمندگانی از قوم فرعون گفتن آیا تو موسا و قوم او را میگذاری تا در روی زمین فساد پیشگی کنند و تو معبودان تو را ترک گویم گفت بزودی پسران ایشان را بیکشیم و زنان ایشان را زنده نگه میداریم و باکن ما بر ایشان غالبیم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى وقوم خود كوفت از خداوند یاری بجویی و شکیبا باشی بیگو زمین از آن خداست هر که راز خود که خواهد وارث آن سازد و آخر کار از آن پرهیزگاران است قالو او دینا من قبل ان تعدینا و من بعد من ayn yuhlik aadwakum a yastakhlifakum fyl arz fyanbur kif t'amlun گفتند اذیت شدیم پیش از آن که نزدی ما بیایی و نیز بعد از آن که با سوی ما آمدی گفت شاید پروردگار شما دشمن شما را نابود کند و شما را در زمین جان شین سازد تا آشکار گرداند که شما چگونه رفتار می کنید وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِنِّنَ الثَّمَرَاطِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ما بگوان قوم فرعون را و خوشصالی ها مجازات کردیم تا باشد که ایشان پند گیرند فَإِذَا جَاءَتْ هُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لنا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا چون ایشان خوبی یعنی رفاهیتی می‌رسید می این از خوبی ماست و چون با ایشان بدی یعنی سختی می‌رسید با مساو و همراهانش بدفامی می‌زدند آن بیگمان بدفامی ایشان که از اعمال خودشان سرچشمه گرفته است نزد خداوند است اما بیشتر ایشان نمی‌دانند وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن مؤمنين. و گفتند هر آنچه از نشانه ها را که تو بما بیاوری تا ما را با آنجا دو کنی هرگز با تو ایمان نمی آوریم فَأَغْسَلْمَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالظَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاصبر ايشان طوفان ملخ شبش وبها وخون را مفصل فرستادیم ولان هسر کیش کردند و مردمی بودند گناهکار ولما وقع علیهم الیذ قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عنک La in kashafta 'an ar-rajzala mu'minan laka wa lanufsilan ma'aka bani Isra'im wa chun bar'ishan 'azab nazil shod goftan ay Musa be parvadarigar-e khod ba asase va'dei ke be to karde ast اگر تو از ما عذاب را دفع کنی ما براستی با تو ایمان می آوریم و با تو بنی اسرائیل را می فرستیم فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل اما چون از ایشان عذاب را بعد از مدت معاینه که آن را به سر می رسانیدن دفع کردیم ناگهان خود عهد خیش را می شکستم فانتقمنا منهم فأبرقناهم کلین بی انهم کذبو بی بزا از ایشان انتقام گرفتیم و ایشان را به دریا خرد کردیم از سبب آن که آیات ما را تکذیب کردن و از آن غافل بودن و اورثن القوم الذین کانون يستضعفون مشارق الارض و التي بارتنا فيها وتمت تمت کلمة ربك الفسنا على بنی إسرائل <سطور> بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع في العون وقومه وما كانوا يعرشون هو مو بمردمي كي محرومودن مناطق شرقي وغربي زمين را كي در آن بركت نهاديم به ميراث داديم و وعده نیکی پروردگار تو برای بنی اسرائیل وفا شد بسبب آنکه شکیبایی ورزیدن و آنچه فرعان و قوم او ساخته و آنچه برافراشته بودن هم را ویران گردانی دید و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتو علی قوم یعتفون علی اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وابن إسرائيل رأي زدريا وغزراني پس چون ایشان به مردم برخوردن که مجاور بطان خیش بودن گفتن ای موسا برای ما نیز معبودی بساز مانین اینکه ایشان معبودانی دارند موسا گفت واقعا شما مردمی هستید که جهالت می ورزید این <تصفيق> ها اولائی متبرن ما و که این مردم با همه چیزهایی که به آن سر و کار دارند نابود شده نیست و باطل است کار یعنی پرستی که ایشان انجام میدادند قال الله ابغیتم اله موسی پیدا مای سخنان خود گفت آیا برای شما جز خدا معبود دیگری بجویم در حالی که او شما را بر همه جهانیان فضیلت دارد است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 و یادارید هنگام را که شما را از قوم فرعون نجات دادیم که شما را پیواسته به بدترین طریقه هاش کنجا می کردن بسران شما را قتل عام می کردن و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن از طرف پروردگار شما آزمایش بزرگ بود و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتا و اتممناها به عشری فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا هَا نَخْنُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَكُن بِسَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ برای موسا سی شب را میاد می گذاشتیم و آن را با ده روزی دیگر تمام کردیم پس میاد می پرواردگارش چهل شب کامل شد و موسا با برادرش حالون گفت در میان قوم من جانشین من شو و امور ایشان را اصلاح کن و راه فسادکاران را پیروی مکن ولم مگه فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وقتی که موسی با وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن زد موسی گفت ای پروردگارم خود را به من نشان ده تا به سوی تو نظر کنم دوان گفت تو مرا نمی بینی ولیکن با سوی کوه نظر کن اگر به جای خود قرار گرفت پس مرا خواهی دید وقتی که پروردگار او بر کوه تجلی کرد آن را ریزه ریزه کرد و موسا بیهوش افتاد پس چون به هوش آمد Gof tu Paki, ba tu ta'ib shudan Wa man nukhustin mu'minan hasa Qada ya Musa, inni stafaytuk ala nnaasi bi risalatii wabikelami Fakhud ma ataytuk wakun min ash ویدن شک من ترا به رسالت خود و به سخن خود بر مردم برگزیدند پس آنچه از وحی تو دادند بگیر و از سپاس گذاران باش و كتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك يا د ها سعوری دفاسیقین و برای او در لوحه ها از هر چیز پنده و تفصیل برای هر چیز نوشته. پس گفتیم اینها را با قوت قوتگیر و قوم خود را امر کن که بهترین آنها را بکار گیرند و به زودی من به شما سرای فاسقان را نشان میدهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بِهَا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآلاء حضوری کسان را از توجه به آیات خود باز می که در زمین بدون استحقاق تکبر می کنم و اگر هر آیه را بیبینند باز هم به آن ایمان نمی آورند. و اگر راه رستگاری را بیبینند آن را به حیث راه خیش نمی گیرند اما اگر راه ناسباب را بیبینند آن را به حیث راه خیش می گیرند اینا سببه است که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آن غافل بودند وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیات ما و لقای آخرت را تکسیب کردن عمالشان حبیطه شده است برایشان جز مزد عمال کردشان جزا دادن نمی وَاتَّخَذَ قَوْمُ گوسا بعد از رفتن او با کوهی تور از زیورات خود گوساله مجسمی را ساختند که آواز همچون آواز گاو داشت آیا ندیدن که آن گوساله با ایشان حرف نمی زند و با ایشان راه را نشان نمی دهد آن را با خدایی گرفتند و ستمگار بودند ولم لما سقط فی قالوا الا ان يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين وشنهققات بدس شانفتاد ودریافتند که گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما بر ما رحم نکند بر ما را نمی آموزد بی مون از یان کارانی يومئني من بعدي ااجرتم امر ربكم والقل الواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابنهم ما ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشهد لي الاعداء اجعلنی مع القوم الظالمین چون موسا با خشم و اندوه با سوی قوم خیش باز گشت؟ گفت بعد از من بد جانشینی کردی آیا بر امر پروردگار خود شتاب ورزیدی بر رسیدن فرمان پروردگار خود سعبودن نکردی ولوه ها, ها را بر زمین گذاشت و برادرش را از موهای سرش گرفته با سوی خود کشانید حارون گفت ای پسر مادر من مردم واقعا مرا ضعیف یافتند و نزدیک بود مرا بکشند پس مرا دشمن شاد مکن و مرا با گروهی ستمگاران در یک ردیف قرار مدی قال رب اذکر لي ول اخی و ادخلنا في رحمتك و او گفت ای پروردگار من من و برادر مرا بیا و ما را مشمول مرحمت خیشگردان و تو مهربانت این مهربانی این الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلتون في الحياة الدین وكذلك نجزي المفترين به همان کسانی که گوشاله را به خدایی گرفتند به زودی و ایشان خشم از جانب پروردگارشان می‌رسد را ذلت است زندگی این دنیا و به این ترتیب ما را جزا می‌دهیم والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها کسانی که مرتکب عمال بد می و بعد از آن توبه می کنند و براستی ایمان می آورند بگمان پروردگار تو بعد از آن آمور زنده و مهربان است و لما سکت عن موسا الغضب اخذ الالواح و فی نسختها غدن و رحمت للذینهم لربهم یرهبون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 موسا هفتاد تن از قوم خود را برای وعدگاه ما انتخاب کرد پس چون ایشان را زلزله شدید گرفت موسا گفت ای پروردگار من اگر میخواستی هم ایشان را و هم ما را پیش از این حلاک میکردی آیا تو ما را در برابر اعمال به خیردان قوم ما حلاک میکنی؟ این نیست مگر آزمایش تو و دین وسیله هر که را خواهی گمراه میسازی و هر که را بخواهی هدایت میکنی تو کارساز ما هستی پس ما را و بر ما مرحمت فرما و تو بهترین یا و اکتب لنا في هذه الدنيا حسنة و في الاخرة انا هدنا اليك قال عذابی اصیب بهی من اشاده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 يأمرهم في التورات والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم عليهم الخبائت ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين که پیانور نبی او را پیروی می که نام او را در نزد خود هم در تورات و هم در انجیل نوشته می آبند ایشان را با معروف یعنی پسندیده امر می کند و ایشان را از منکر یعنی ناپسند باز می دارد و برای ایشان چیزهای پاک را حلال می و برای ایشان چیزهای پلید را حرام می سازد بارهای سنگینشان و توقی را که برگردن است بر پس آنانی که با او ایمان آوردند و او را تعظیم کردند و او را یعوی دادند و نور را که با او فرستاده شده است پیروی نمودند هم ای شانند رستگاه قل الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا للذی له ملک السما کلمات او و تبع او را دنبال کنید تا شاید هدایت شوید سوی همه شما از جانب ذاتی که پادشاهی آسمارها و زمین از آن اوست معبودی جز او نیست زندمی گردان و میمیرانت پس با خدا و پیامبر او آن نبی و می ایمان آورید که با خداوند و گفته های او ایمان دارد و او را پیروی کنید تا با روشد که رحیان شد و من قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و بهی یعبیلون و از قوم موسیٰ بروحی هستن که به حق هدایت و به آن حکم بیکنن و قطعناه 122 عشرة أسباطا أمما 132 وأوحينا إلى موسائه استسقاه قومه 143 أن الضب عصاك الحجر 144 فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 145 قد علم كل أناس شربهم وظللنا عليهم الغمامة را به دوازده قبیله اومد تقسیم نمودیم و موسا هنگامی که قوم او از او آب خواستند وحی کردیم که با عصای خود به سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه جاری شد، هر گروه جای آب خود را دریافت، از عبر بر ایشان سایبان ساختیم و بر ایشان من و را نازل کردیم و گفتیم از چیزهای پاکیزهی که با شما روزی داده ایم بخورید، ایشان با ما ستم نکردن بلکه برخیشتن ستم می کردند،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 و بیادار هنگامی را که به ایشان گفته شد به این شهر جاگوزین شوید و از آن هر طوری که میخواهید بخورید و بگوید خدایا گناهان ما را بیامرز و بدروازه شهر بفیروتنی دارایید گناهان شما را برای شما میامرزیم و بزودی بر پاداش نیکوکاران میفضاییم فبدلن لذین ظلمو منهم قول زبی مک مو یا گلیمون پستم گارانشان آن کلی را و غیر آنچه و ایشان گفته شده بود تبدیل کردن پس بر ایشان به سبب زلک می کردن نه عذابی را از آسمان فرستاری. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا از ایشان در مورد شهری که در کنار بحر قرار داشت سوال کن که احالی آن در روز شنبه دست به تجاوز می چون در روز شنبه ایشان ماهیان آنها به صورت آشکارا به ایشان می ولی در روزی که شنبه نداشتن ماهی به ایشان نمی آمد. ما ایشان را چنین آزمودیم به سبب اینکه که دست خوش فسق شده بودن و ایو قالت امتن ما تعذبون قوما لالاهم لكم او قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون وبهادران رمراكي گروه از ایشان گفتند چرا کسانی را پن میریدید که خداوند ایشان را هلاک کردنی یا با عذاب شدید عذاب کردنی است و ایزان گفتن تا ما را به حضور پروردگار شما و حضوری باشد و تا باشد که ایشان بترسند دلن آن درس را که با آن پنداداش غلط را موشکردند که سونی را که از آمالینو سایست بازشان میداشتن نجات دادیم و ستم را با شهید گرفتار کردیم به سبب از خوش فسق شده بودند و چون از اون از اسب باز داشته شده بودن سرکشی کردن برایشان گفتیم بوزینه ای باشید باش و اذان ربک لیبعثن علیهم اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَبَيَادَارِ چون پر وردگارتو اعلام کرد که بر ایشان تا روز قیامت کسانی را میگمارد که عذاب شدید را پیوسته بر آنها تحمیل کنند واقعاً پر وردگارتو در عذاب کردن صحی و او در عین حال واقعاً آمر زنده و مهربان است وَقَدْطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون اي شلون بهگروهاي مختلف لروي زمین تقسيم كردين بعضشون صالحن وبعضشون غير زين اي شلون بنیكي ها وبتي ها آزموده تا به سويم ما باز كردن فخالفني خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا آنگاه بعد از ایشان نسل جانشینیشان شد که کتاب را می گرفتند و برای خود متای به ازش این دنیا را برگذیدند و می ما آمرزیده خواهیم شد ولی در عین حال اگر همانند همان متا با ایشان بیاید آن را می بیرند. آیا از ایشان در کتاب عهد گرفتن نشد که به خدا جز به حق چیزی نگوین و مطالب را که در آن است خانده ان و برای پرهیزگاران سرای آخرت بهتر است آیا نمی فهمی؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَعَقَامُ الصَّلَاةَ اِن و کسانی که بر کتاب چند می زنند و نماز را به تمام و کمال برپا می دارند ما هرگز مزد مسلحان را زایه نمی کنیم و اید نتقن الجبل فوقهم که انه زلتون و بخاطر بیاور هنگامی را که ما کوه را بر بالایشان قرار دادیم گویا که آن سایه‌بانی بود و پسندشان که بر ایشان افتند است و ایشان گفتیم آن را با شما دادیم با تمام و تمام نیرو بگیرید و آن را در آن است به یاد گیرید تا باشد که شما پرهیزگار شوید و اذ اخذ ربك من بني ادم من قوم قالوا بلا شهدنا پروردگار تو از فرزندان آدم از پشت پشتهایشان اولادشان را گرفت یعنی بیرون آورد و ایشان را بر خودشان گواه ساخت از ایشان پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن بله ما شهادت میدهیم که تو پروردگار مایی ای. این برای آن است که ما با روز قیامت آمد بگوید ما واقعا از این موضوع غافل بودیم او فَتُبْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبِقِنُونَ یا بگوید دیگومان پدران ما پیش از ما شرک آوردن و ما نصلای بعد از ایشان بیدیم فس آیا ما را برنسبت کسانی که برای باطل رفته انحراک می کنیم؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ما آیات را به تفصیل بیان می تا باشد که ایشان به سوی ما بازگردند و اتنو علیهن نبا الگی آتیناه آیاتنا فا انسلق منها فا اتبعه الشیطان من الغاری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 فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَمْهَقْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخُصٍّ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر می او را با وسیله آن آیات رفع میدادیم اما او به زمین پایان شد و از هوای نفس خیش پیروی کرد پس مثال او مثال سعی است که اگر بر او حمله کنی هم حلست می زند. یعنی زبان خود را بیرون می آورد یا او را ترکنی باز هم حلست می زند. این از مثال کسانی که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستانها را با مردم قصه تا باشد که فکر کنند ساء مثلا القوم الذین تذبو لآیاتنا و انفسهم كانوا يغلمون بد مثال مثال قومی که آیات ما را تکزیب کرده و برخیش ستم می نمودند من يزد الله فهو المهتدی و yw nes mindrik. bach lath 세f. la hun buck Faa na lyda hynnyddi. dda hynnyddi.dn ddirwyr我的? hwn mewch e fundraising.dds.dderwyr我的 Natalwya Nam.ddo farmadaер Galaxy Kneeや�.dda Faa na timkeや lesengra elders.dd उलाएका الامانداهم اظل اولائك هم الغافلون बेगमान باشا ایشان دلهای دارند که با آن نمی فهمن و چشمانی دارند که با آن نمی بینن و گوشهای دارن که با آن نمی شنوند، ایشان هم چون چار پایان هم بلکه از آنها هم گمراه ترن و هم ایشانن غفلت زده ولله الاسماء الحسن فدعوه بها وَذَوُ الَّذِينَ يُرْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نام های نیکو از آن فلاوند است پس او را به این نام ها و کسان را که در نام او کجری می کنند به کنار بگذارید با زودی ایشان مطابق و کردار خیش جزا داده می شود وَمِنُّوَ مَنْ خَلَقَ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَدِلُونَ فَاسْكُنُونِكَ أَفْرِيدَيْنِ بِرُوحِ أَنْكَ ثِجَرَانْ وَبِالْحَقِّ رَاهِنَمَايِي وَمُتَابِقٌ بِأَنْ عَدْلَ مِيورزان وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا و کسانی که آیات ما را تکذیب کردن ایشان را از راه که خود نمی درجه به درجه در حذاب فروح خواهیم برد و ام لی لهم این نکیبی و با ایشان محلت می دهیم بگمان تکبیر است اولم یتفکر ما بی من جن هو إلا نهير مبين فای فرکن نکردن که همیشینشان دیوانگی ندارد او نیست مگر بیم دهنده اشکا اولا wa bi ayyi hadithin ba'dahu nu'minun wa yu'ishun bi idarati wa nazmi asman wa zamin wa har chizi k ay khuda wanda afidan la yibinan wa wa inna min dishan k shayad ajalishan وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ كَسِرَاتِ خُرْوَانٍ غُمْرَاءَ سَارَتْ رَهْنَمَايِ نَدَارَتْ وَخُدَاوَنْ ايشان دار در سرکشی ایشان سرگردانی می‌گذارد يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا 113. السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته 115. يسألونك كأنك حفي عنها 116. قل إنما علمها عند الله ولكن أكترا از تو در باره قیامت می که لنگر انداختن آن چی وقت است؟ بگو، بگو من علم آن تنها نزد پروردگار من است. هیچ کس بغیر از او نمیتواند تواند وقت آن را آشکار سازد. بار آن بر آسمان هاوز و مینسنگ می کرد. بر شما نمی آید مگر نا به آن. از تو سوال می کنند که گویا تو به دریافت آن مشتاقی؟ بگو، همان علم آن نزده خداوند است ولی اکثر مردم نمی دانند.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 برای خود قادر نیستم مگر آنچی را خدا خواسته است و اگر من غیب می دانستم خیر بیشمار به دست می آوردم و هرگز به من زیانی نمی رسی نیستم من مگر دیل دهنده و مجد دهنده برای گروهی که ایمان می آورند هو الگی خلقه کن من نفس فلما أتقل الدعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وووز كشمارا زيك شخصا فريق واز او همسر اشرا فريق طابعو پس چون او را در آهوش گرفت یعنی با او همدستر شد هم بار خیف برداشت پس او به دوره باداری خود دوام می داد چون سنگی بار شد و با خدای پروردگار خیش دعا کردند که اگر با ما فرزند شایسته بیدیهی بیگمان از امره سفاظ گزاران می باشیم فلم ما آتا و چون خداوند به ایشان فرزند صالحی عنایت کرد برای او در آن چه با ایشان داده ارث شریکان مقرر داشتند ولی خداوند از آن چه به او شریک می‌آورند منزه است ای شریکون ما لا یفلق شیئا و هو به او موجودات را شریک می‌آورند که هیچ چیزی را نمی‌آفرینند و خودشان نیز آفریده شدن وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْوَهُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْفُونَ این شریکان نبا مشریکان کمک کرده میتوانند و نه هم با خود یادی داده میتوانند وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْغُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء اگر اینها را برای راه راست بخوانید از شما پیروی نمیکنن و شما اکسان است که دعوتشان شان کنی یا خاموش بمانید الذي تدعون مندون الله عداد فلت فادقی که به خدا نیایش می کنید بگمان مثل شما بندگانی اند اگر نچنین است پس آنها را بخانید و باید که دعای شما را اجابت کنند اگر راست می گوید پنخواهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن محکم بگیرند یا چشم چشمانهایی دارند که با آن ببینند یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند بی گوش rekan خود را بخالید و صفات در برابر من هر هیله‌ای را که میتوانید به کار برید و مرا مغلط ندهید این خداوند هست آنکه کتاب را نازل کرد و او صالحان را کارسازی سارجی می کند و الذین تدعون من دونه لا يستقیرون نصرتم ولا باشان به جز خدا آش میكن نمی توانن شما راكوكن هم با خودشان کوکی کرده می توانند وإ ت إلى الج لا ييسنا وتظون إلييك و, و لا يصون اگر انها را براه راست بخواانید نمی شوان ایشان را میبینی که با سوی تو مینگرن در حالی که ایشان نمیبینن خودی العفو و امور و اعرف عن الجایی بخشاشگری را پیشه کن و به کارهای پسندیده امر کن و از مردم نازان روی بگردان و اما ینزغن نک من الشیطان agar huwa as-shaytan wa turah ya'bad bas bi-khodawwan panah bi-ward bi-guman u shana wa danas innal ladina ittaqaw idza massahum qa'ifum min ash-shaytan tadhakkaru fa شور و وسوسه های شیطان ایشان را فرا میگیرد خدا را یاد می کنند و ناگهان بینا می شوند و اخوانهم یمدونهم اما برادران شانیاری کسانی را که پرهیزگار نیستند به گمراهی می کشانن. و بعد از آن در گمراه ساختنشان هیچ کوتاهی نمیکنند. وَإِذَا لَمْ تَحْكِهِمْ بِآيَةٍ خبر نگوزیی عثمان چیزی را پیدا می‌کنم که با من از جانب پروردگار من وحی می شود این قرآن روشنایی های آن از جانب پروردگار شما و راهنمایی و رحمتش برای ما می آورد و اذا قیل لكم تلايه قران خواندنش را با آن با توجهی کامل گوش دهی و خاموش باشید تا باشد که مورد رحمت واقع شود و ربک فی نفسك تضرعا وخیفه ودون الجهر من القول بالهدوء والاصال ولا من الغافلین موردگار خیشرا پتهای بازاری و ترس با آواز آهسته نبولند در پگاه و بگاه یاد کن و از غافلان من ای که پروردگار تو اند از پرستش او گردن کشی کنند او را به پاکیاد می رماید و به او سجده می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازم اهنبان نهایت باره یسئلونک عنیقه خود در برابر اموال های غنیمت میگرسند به و اموال های غنیمت از آن خدا و رسول اوست بنابر آن از خدا به تسلیم روابط ذاتونی خیش را اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید اگر ایمانداری این و آیات او برایشان خانده شود دلهایشان ستشار از ترس خدا می شود این آیت ها ایمانشان را نیرون منتر می سازد و بر پروردگار خود توکل می رومایند <الذینا> <يمفکون> آنهایی که نماز را تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه با ایشان روزی دادیم خرچ می کنند اولئی که هم المؤمنون حقا لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون کریم هم ایشان و مسلمان راستیم برای ایشان در نزد پروردگارشان در جاتی است و آمرزش و روزی کلیمانه کما اخردت ربت من بیتی بالحق و این من المؤمنین لکاریون شنان که پروردگارت ترا از خانه تو به حق بیرون کرد گروهی از مسلمانان از آن واقعا ناقش نیست بودند مجادله کنند در حق بعدما تبینت انما یساقون الالموت وهم یمنون موجود بر که اشکارا شده بود مجادله میکردند تو گویی که ایشان بر سوی مرگ ساخته می شدن و ایشان نمی گریستند وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين لأنها از دو گروه دشمن از آن شماست شما آرزو کردید که گروه بدون صلاح از آن شما گردند اما خدا میخواست تا حق را به سخنان خیش بر ثبوت رساند و ریشه کفار را بکند لیو حق الحق و یو طلال باطل وله فریح المجرمون تا حق را به ثبوت رساند و باطل را ناگود کند هرچند مجرمان نخشنود شوند؟ بایدارید که چون از پروردگار خود کمک میخواستید پس او درخواست شما را پذیرفت و گفت من شما را به یک هزار فرشته راید وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَقُمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنَّقُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ خداوان این کومک را نگردانید مگر مجدهید و تا شما oron hirat wa firuzi hayst magar az janib khoda bego چیگونه پینکی را و حیث آرامشه از جانب خیش با شما چی رسد و بل شما بارانی از آسمان فرو دارد تا شما را به آن پاک یعنی بانشافت سازد و آلودگی شیطان یعنی کسالت را از شما بزوداید تا های شما را به نور امید پیوست سازد و شما را به آن ثابت قدم بدارد ازیوشی ربوکایی رشتگان وحیه کرد تا با شما ببویند که من با شمایم پس مؤمنان را صبات بخشی به زودی در دل گفار ترس و وحشت می اسکنم. پس شما بر بالای گردنهایشان بزنید و بر هر سر انگشت از دستهایشان بزنید یعنی سر و دستشان را با شمشیر قطع کنید ذالک بی انهم من الله و رسوله فإن الله شديد العقاب این السبب است که ايشان با خدا و خيانبره و مخالفت ميورزند و هر کسی که با خدا واند و خيانبره و مخالفت ورزاد فس با اجمال خدا واند سخت ازاف کلنده است ذلك فدوكو بچشید بیگومان بر کافران عذاب آتش دوزخ نیز در نظر گرفته شده است الذي آمعملهذلت الذي ك زحف فلت والمون اددا ای مؤمنان انگامی که با کفار در میدان جنگ و برو شدید پس هرگز به ایشان پشت مگردانی. وَمَنْ يُوَلِّهِ الْيَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَيِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ ذَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ لكنك <تصفيق> هذه برای سه همگیوی در گوشه دیگری از جنگ یا پیوستن به قطعه دیگری از مجایدان به دشمن پشت گشتان پس بیگمان به خشمی از خدا بازگشته است و جای اون دوزخ است و چی بد پناگاهی فلنده دار بلکه خداوند بود که ایشان را کشت و تو نزدی وقتی که با چشمانشان خواب زدی مگر این خداوند بود که زد تا مسلمانان را به آن از جانب خیش آزمایش کند آزمایش نیکو بگون خداوند شنوا و داناست و ان الله و قید و قید و قید. این کار است که شد بيشاك خلوان سسكن لي في ريب كافرانة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح بس بگمان باید شما فیصله شد اکنون اگر از مخالفت خودداری ورزید این برای شما بهتر است ولی اگر به جنگ بازگردید ما هم باز میگردیم و قواه شما هرگز شما را در دفاع بینیان ساختر نمیتوانند اگرچی بسیار هم باشند و حقاق خداوند با مسلمانان است یه yeah. تسمعون به ام امیران خدا و رسول او را فرمان برید و از او رو مگردانی در حال که فرمان او را می شنوید مانند کسانی نباشید که می گویند می شنوید اما گوش فرا نمی دهند و ترین چهار پایان در نز خاهون آنهایی آن که کر و گنگ هستند آنهایی که دک نداند ولوعلم الله به خرا اسم ولو ا اسمعون و اگر خداون در انشان خین را میدانست یقینا آنها را می شنوند. اگر ایشان را بشنواند واکن ایشان روی برمیتابند در حالی که از پذیرفتن حق اراز میکنند یه yeah. در حالی که شما را به چیز ترا می خاند که شما را زنده میسازد و بدانید که حق و خداون در بین انسان و دل او حائل شو می شود و حقیقت این است که به سوی او حشر می شود وستکو خدمتا لا تصیبن الذین ظلمون منکم ترسید که تنها بس تمگاران شما نمیرسد بدانید که برمان خداوان سخت اضاف کنیم درس وَلْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَبْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ و هنگامی را به خانکره آورید که در زمین دسته کوچک و نتوانی بودید از این میترسیدید که مردم شما را برو بایند پس خدا شما را جای داد و بیاری خود تعیید کرد و شما را چیزهای پاکی زر و زی دادید تا باست که سپاس گذاشد یه yeah. خيانة معكم اريد وهام اماناتي خيشي تدونست خيانتكم ورجي واعلم انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وبذل اعتذاريهاي شما واولاد شما وسيله اجمايش ان وبيشك خداوند است که مسجد او مسجد بزرگ میباشد یا الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويرزقكم والله اگر شما از خدا به تفسیر برای شما فرقان فراهم میگرداند که با آن میان حق و باطل فرق کنید و گناهان شما را شما میزو داید و خداون صاحب فضل بزرگ است و این یمکرو بکالذین کفرولی مثبتوک او یقفلوک او مخرجوک و یمکرون و يمبرون والله و بایدار و را که کفار به تو دسیسه میچیدن تا تو را مرموز کنن یا تو را بکشن یا تو از مکه معظمت بیرون کنن ایشان چاره میاندیشیدن یعنی تدبیر میکردن و خداوند نیست تدبیر میکرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگاه است و اذا کتلا علیه لو نشاء, مثل هذا هذا مثل آن را می گفتفتیم این نیست tanu hu d'Allah. Kumun agar in haqqas az janib tu, fas bar ma az asman sang bibaran ya bar ma azab dar در عذاب نمیکنند تا زمانی که تو در میان باشی و خداوان هرگز ایشان در عذاب نمیکنند تا ایشان آمرزش بخواهند و ما لهم الا معذبهم الله وهم هم عن عنی المسجد الحرام در حالی که از مسجد حرام مردم را باز می و ایشان سرپرست آن هم نیستن نیست سرپرست مسجد حرام مگر پرهیزگاران اما بیشتر ایشان نمی و میک زدن و کفزدن چیزی دیگری نبود پس عذاب را به سبب کافر بودن خیش می چشن. این دارای خود را خدش می کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند ایشان مال خود را هم مصرف خواهند کرد و سپس بر ایشان مایه ای حسرتی خواهد بود و بعد از آن مغلوب می گردند و کسانی که کافر شدند سوی دوزخ هر شده شده لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علم jami'an fayaj'aluhum fi jahanam ula'ika hum al-khasirun ta'khra wan marzume na pak razmume pakiza judo chazat wa na pak kan ra vazi barbaziti gharu خیش بازستان گذشته برایشان آمرزیده می شود ولی اگر به کفر خیش اصرار وزن و به با جنگ بازگردن سرنوشت پیشینیان در برایشان جاری شده نیست و قابلون هم حتی لا تکونه کتمتون نبی با کینمونت و دین کاملا از آن خدا باشد اگر ایشان از اموری نیکو خیش دست کشان پس خدا وان با آن چی نیکوند بیناست وان تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعمل مولا پس بدانید که بیگمان خدا و وند کارسازی شماست. چی خوب کارسازی و چی خوب مددگاری.